در راه با چنان شتابی رفتم که گویی در ورته گیر کردم و جز این راه دیگر چارهای برایم باقی نمانده. به همه زنین شده بودم. از هرکس کس که من نگاه میکرد میترسیدم. همه را جاسوس شهبانی میدانستم. به نظرم آمد که همه دست بیکی کردند که جام شهد آسایش مرا را بشکنند. خانهش پشت مسجد سپه سالار هنوز در نزده آقا رجب مرا به داخل حیات برد آن طرف حیات رو به آفتاب راه پلهای به ایوانی که پیچ و دوله تارمیهای آن را پیشان پوشانده بود منتهی میشد آقا رجب بدون اینکه به من نگاه کند مانند چوبی که لباس برتن کرده باشد با قیافهای که کوچکترین تأثیرات روحی او را نمایان نمیساخت کنار ایستاد و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 تا شما ادراک کنید که او چگونه دانانسته با من مانند گربه کوچکی که با دمش بازی کند رفتار می کرد. من منتظر بودم که محض ورود به اتاق او مرا در آغوش گیرد و من صورت خود را پچرخانم و مانع شدم. چرا این تصمیم را گرفته بودم؟ برای اینکه تسلط خود را برو حفظ کنم. در صورتی که من برای او لح لح می زدم. دلم میخواست خواست لبهای او سر و صورت مرا بپوشاند. دلم می خواست... میخواست آنچه را که در زندگی آرزوریش را کشیدم و هرگز نصیبم نشد در آغوش گرم او احساس کنم. با وجود این برای اثبات و حفظ قدرت شخصیت خود چنین تصمیم می گرفته بودم. نمیخواستم پی ببرد که مانند عروسک بی ارادهی قوه مافوق قوای عادی مرا به سوی او کشنده. آن وقت او آنقدر آرام بود. آیا از فرط استراب چرواتش را باخته بود یا اینکه او هم مرعوب شده بود؟ شاید تلفن من تاثیر خود را کرد و او را سر آب آورده بود. آخ آن روزها خیال میکردم که استاد مرد است و تا خیر و شر کاری را نسنجد اقدام نمی کند. فکرش رو بکنید که من منی که با یک چشمک ست تا جوان را مثل انتر لوتی ها به رقص در میآوردم مجبور بودم برای یک بوسه او گدایی کنم. مرا به داخل اتاق بود. به نظر آرام می رسید. اتاق سادهی بود، دو صندلی راحت و یک میز گرد تنها اساسی آن بود روی میز کوچکی یک گلان پر از گل دیده میشد مرا روی صندلی نشاند خودش هم پهلوی من نشست چند لحظهای به من نگاه کرد. آن وقت پرسید چرا نمیخواستید بیایید گفتم با خود در جنگ بودم پرسید بلاخره کی گفتم شما گفت با من که در جنگ نبودید همه فنون دلربایی از یادم رفت دیگر آن نگاه ها که همه را از پادر در از چشهایم تراوش نمیکرد. آن همه قول و قذدی که بلد بودم سر زبانم خشک شد دیگر خنده‌هایم از یادم رفته بود کوف و شکست خورده به او نگاه میکردم اگر یک کلمه دیگر میگفت بقص گلویم را میگرفت اما آقا رجب من از ورط نجات داد صدای پای او در ایوان شنیده شد گفتم کارهایتان کجاست؟ گفت همه اتاق پهلویی آتلیه من است گفتم بگذارید تماشا کنم گفت چیز زیادی ندارم ناتمام فراوان است حالا میخوایی تماشا کنید یا بعد از نهار گفتم هم حالا و هم بعد از نهار گفت صبر کنید رجب چکار داشتی؟ آقا رجب با سیمای نقاب زدش وارد اتاق شد و گفت ارزی نداشتم استاد گفت ببین چه میگویم اگر کسی آمد من نیستم فرنگیز خانم را که میشناسی، آمده است که من صورتش را بکشم گفت بله آقا استاد ادامه داد هر کی ازا چیزی پرسید همین را میگویی جواب داد بله آقا استاد گفت کار دیگری نداشتم آقا رجب پرسید که نهار میل می کنید? استاد جواب داد ما حالا می رویم به آتلیه تو سفره را بیانداز ما خودمان خبر می کنیم بعد رفتیم به کارگاهش تابلوی بزرگ جشن کشف هجاب در آن زمان هنوز ناتمام بود و سر چندین تابلو از رواییت خیام کار می کرد. خانه راiyati آخرین اثر او در تهران داشت تمام می شد من مجذوب این همه نبوغ و قدرت شدم ناگهان خود را در عالمی که آرزویش را داشتم یافتم با صد و با دلی گرفته مدتی با آنها نگریستم استادم در ایستاده بود و سوز نگاه او را از پشت سر احساس می کردم جلای این کارگاه من را گرفت. دست و پای خود را گم کردم. من در اروپا کارهای استادان بزرگ دنیا را کمابیش دیده بودم. در ایتالیا یک دنیا زیبایی، تابلوهای لوناردو داوینچی و, دا و رافائل آدمی را به بخت و می‌دارد. من کارهای مکتب فرانسه را دوست داشتم. در مونیخ آسای رانبراند و دوره را دیده بودم. اما آنچه برای نخستین بار در آتلیه او دیدم بیشتر در من تاثیر کرد. نه برای اینکه استاد هنرمند بزرگوارتری بود. نه، آنچه من در آن کارگاه دیدم همش پارههایی از روح خودم بود. این که استاد در پردههایش تصویر کرده بود به زبان من حرف میزدند. زبان مرا میفهمیدند با چشم من نگاه میکردند. من آنها را میشناختم و دردهایشان را میفهمیدم. یک نوع آشنایی خودی در آنجا حکر فرما بود در نظر من حوادث و مسایبی که در تصویرها جلوگر بود در وحله اول جلب توجه نمی کرد. بیشتر از این خوشم می که آدمهایی که این حوادث به سرشان آمده از کسان و نزدیکان و هموطنان خود من هستند آنچه آنها میکردند می کردند کم و بیش همان چیزهایی بود که به سر من آمده بود و یا می تابلوی جشن کشف و اجاب تازه تحریزی شده بود اما قیافه زن با حالت مصحکش تقریبا تمام می نمود. فوری یاد مادرم افتادم مادرم به محض اینکه سر و صداها را افتاد از ایران فرار کرد و رفت به کربلا و میخواست آنجا مجاور بشود اما خالجانم تقریبا به همین وزع گرفتار شد وزیر عدلیه آخوند میخواست دست خالجانم را که یک عمر تسبیح گردانده بود ببوسد تمام این مناظر و آدمها همه به نحوی با من ارتباط داشتند و من احساس کردم که بهشتی که آرزویش را میکردم در این اتاق فراهم است